چون بلبل مست، راه در بستان یافت، روی گل و جام واده را خندان یافت، آمد به زبان حال، در گوشم گفت، در که عمر ربته را نتبان یافت. خیام، تنت به خیمه ایمانت راست، سلطان روح است و منزلش در اپناست، بر عجل ز بحر دیگر منزل ویران کند این خیمه چو سلطان برخواست. خیام که خیمه های حکمت می دوخت، در کوره غم فتاد و ناگاه بسوخت، مقراز عجل تناب عمرش ببرید، دلال غذا به رایگانش بفروخت. در فصل بهار بابوته هور سرشت، یک کوزه می اگر بود برلبه کشت، هرچند به نزد آم بد باشد این، از سگ بترم اگر کنم یاده بهشت.